جميعا و... السلام علیکم و الله و برکاته. اینجا خراسان است. دا خراسان. بس خراسان دنگ است شناونده های رادیو سرای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید. حال توجه شما را جلب می داریم بعد داشته های امروزی.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 رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان صبح برائي الله بشبر رساليدي وحمد زان الله حس هي معبودي بجز الله كي افتو شريكي نذارت وجود ندارة. و حمد فقط از آن اوست و بر هر چیز قادر است. الهی من خیر آنتی در این شبست و خیر آنتی بعد از آن است راز تو میطلب. و شر آنتی که در این شب و ما بعد آن وجود دارد بتوانم برم. الهی من, من از تم بدي و بدی های پیری بتو بار الہا من از عذاب زخو عذاب قبر بتو پنامی سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارکش محمد کنیهاش ابوالقاسم نام پدرش عبدالله فرزند عبدالمطلب نام مادرش عآمنه دختر وحب بود پیانبر صلی الله علیه وسلم در دوازدهم ربی الاول عامل فیل که مصادف با پنجسد و هفتاد میلادی است در مکه متولد شد این سال را به این خاطر عامل فیل نامیدند که عبره با سپاهیان خیش که فیلهای جنگی به همراه داشت تصمیم به ویران نمودن خانه الله یعنی کعبه گرفتند. اما الله جل جلاله آنان را به خاطر چنین قصد شوم نابود کرد و برای حلاکت و نابودی آنان پرندگان به نام ابابیل فرستاد که سنگهای از سجیل بر آنان پرتاب می کرد به گونه‌ای که الله جل جلاله در سوره فیل میفرماید. فرماید فعل ربک الفیل آیا دهی که پروردگار تو با فیل که قصد ویران کردن خانه ای الله داشتند چی کرد؟ وچی بر سرشان آورده است الم یجعل مگر نیرنگ ایشان را تباه و باطل نگردانده است و ارسل علیهم ابابیل و مگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده است آن پرندگان به سوی فیل سواران سنگ های کوچکی از سنگ گل را می انداختند. قبل از تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم، پدرش عبد عبدالله بن عبد المطلب که برای دیدار دایهایش بنی نجار بیرون رفته بود در گذشت لذا پیانبر صلی الله علیه وسلم هنگام که متولد شد پدرش دارفانی را ودا گفته بود هنگام تولد پیامبر صلی الله علیه وسلم این مجدر را به جدش عبدالمطلب دادند عبد المطلب از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و او را در آغوش گرفت و با او به شکرانه این نعمت الله جل جلاله به کعبه پرداخت و نام او را به الهام از جانب الله جل جلاله محمد گذاشت با وجود این که این نام در میان عرب سابقه نداشت اما عبد المطلب به این خاطر که دوست داشت نام او نزد الله جل جلاله ستوده شود نام او را محمد پیوسته و هموار ستوده و پسندیده نامید. آمنه مادر پیامبر صلی الله علیه وسلم از همان نخستین روز تولد او دریافت که شیر کافی برای خوراندن تنها سمره ازدواج خش و یادگار عبدالله ندارد آمنه تنها هفت روز به پیامبر صلی الله علیه وسلم شیر داد و پس از آن از تغذیه و سیر کردن وای ناتوان ماند اولین زن که بعد از آمنه پیامبر صلی الله علیه وسلم را شیر داد سویبه کنیز آزاد شده ای بود که همزمان با پیامبر فرزندش را به نام مسروح شیر می داد بعد از سویبه کسی که سرپرستی پیامبر صلی الله علیه وسلم را بر عهده گرفت حلیمه دختر ابی زعیب بود در آن زمان رسم عاداد عرب بر این بود که فرزندانشان را به خاطر اینکه قوی و نیرومند گردند و از هوای آزاد باز استفاده نمایند و ذهنشان برای یادگیری مطالب آماده گردد و همچنین به این خاطر که زبان فسیح عربی را یاد بگیرند به دایم سپردند. زنان بادینشین نیز به خاطر امرار معاش و اینکه از این راه بتوانند مخارج زندگی خودشان را تأمین نمایند به شهر می آمدند. تا سرپرستی کودک را به عهده گیرند عبدالمطلب و آمنه نیز در جستجوی یافتن دایه‌ای بر آمدند تا سرپرستی پیامبر صلی الله علیه و را به گردد لذا پیامبر صلی الله علیه و را به زن به نام حلیمه سپردند بعد از این که حلیمه پیامبر صلی الله علیه و را به عنوان فرزند قبول کرد برکات الله جل و او در زندگی او سرازیر شد حلیمه می گوید. بعد از اینکه که را پذیرفتم پستانهای شتری که داشتیم پر از شیر شد در حالی که قبل از آن از فرط لاغری طاقت و تحمل راه رفتن را نداشت همچنین پستانهای خودم پر از شیر گردید به بگونه که هم پیامبر و هم فرزندم سیر می شدند اما قبل از آن پستانهای من شیر نداشت که بتواند فقط فرزندم را از گرسنگی نجات دهد در ایامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز تحت سرپرستی حلیمه سر میبرد ماجرای شکافته شدن سینه پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داد ماجرا این قرار بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم و فرزندان حلیمه که برای بازی به بیرون رفته بودند، پسر سر حلیمه دوان دوان نزد حلیمه آمد و گفت دو مرد سفید پوش آمدند و شکم برادر قریشی ما را شکافتند و اکنون دستهایشان را نیز در شکم او قرار دادند حلیمه و همسرش دوان دوان نزد پیانبر صلی الله علیه وسلم شتافتند و او را رنگ پریده یافتند پس از آن ماجرا را از او پرسیدند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت دو مرد سفید پوش آمدند و قلبم را شکافتند و چیز را از آن بیرون آوردند و گفتند این بهره شیطان است و سپس قلبم را در تشت زرین از آب زمزم شستشو دادند و پس از آن آن را به جای نخستین آن بازگرداندند. این ماجرا باعث شد تا حلیمه برخلاف رغبت و ميل قلبی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مادرش بسپارد وفات آمنه مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این که حلیما پیامبر را به مادرش سپرد مادرش در صدد برآمد تا همرای پیامبر برای تجدید عهد با همسر سفر کرده اش و همچنین زیارت اقوام و خویشاوندان جد پیامبر عبدالمطلب که از قبیله بنی نجار بودند بایسرب یعنی مدینه مسافرت نمایند در این سفر عبدالمطلب جد پیامبر صلی الله علیه و وسلم و خدمتگذار آمنه به نام ام ایمان او را همراهی می کردند بعد از این که مسافت حدود 500 کیلومتر را طی نمودند بایسرب رسیدند و آمنه یک ماه را در آنجا ماند هنگام بازگشت آمنه دچار بیماری سخت گردید که در راهی به نام ابوا که منطقه میان مکه و مدینه است درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد و در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و سلم شش ساله بود رادیو صدای خلافت رادیو صدای براعات از همه کفار مرتدین و روافظ نواتی لحظات خبری صدای خلافت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 سلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان گرامی و مومنی رادیو صدای خلافت با نشرات دری ما خوش آمدید امید است که روزهای ماه مبارک رمضان را با عبادات، تاعت و تلاوت قرآن کریم به خوبی و خوشحالی سپری نمایید به همین امیدواری میپردازیم به آخرین تحولات و های مجاهدینی دولت اسلامی نخوص سرخت چند خبر صلید صلید. شیرولی وردک آزوی پارلمان افغانستان به حلاکت رسید سنی نفصواری. سنی نفصواری. این هدام یک تانک ارتش میسر در ولایت سینا سانی شدن یک دعوتگری نصرانی در بنگلادش. دیش سنی نفصواری. سنی نفصواری. سنی نفصواری. دوباره در گریه ها در پالاشگاه نفتی بیجی سانی و کشته و زخمی شدن سیوسه سی سرباز فجر لیبی در شهر سرت. صلیل الصوارب و درب القتال طريق و این هم مشروع خبرها. گزارش های رسیده از کابل می رساند که مجاهدین دولت اسلامی شیرولی وردک غزو پارلمان اداره مرتد افغانستان را در اثر انفجار ماینی جاسازی شده با حرکت رساندند یک اراده بولدوزرینی نیروهای نظامی سوری در شرق شهر تدمور با شلیک موشک هدایت شونده از بین رفت خبرهای رسیده از مصر میرساند که مجاهدین دولت اسلامی کاروان نیروهای مصری را در سرک رفع و عریش در شمال سینا هدف انفجار ماین قرار دادند در نتیجه یک تانک دشمن از بین رفته و تعدادی از سربازان کشته شدند. یک درگیری بین مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای دشمن در فیلیپین رخ داد. در اثر چندین ساعت درگیری دو سرباز ارتش فیلیپین در منطقه باسیلان کشته شدند. مجاهدین دولت اسلامی در ترین موارد یک دعوتگری مسیحی به نام سونیل گومز را در روستای بونبارا در شمال غربی بنگلادش تیرور کردند. در گریه ها در شمال بیجی میانی مجاهدینی دولت اسلامی و نیروهای رافضی شدت یافته است. تازه ترین ها از این شهر می‌رساند که نیروهای دولت اسلامی از چند مسیر برگ است.گای از زیوت، منطقه هنشاب و نزدیک پالایشگاه نفتی حملاتی را انجام دادند. خبرهای ابتدایی می‌رساند که پنج وسایت نظامی همین نیروها در شمال بیجی به آتش کشیده شده است، یا خبر دیگر از این منطقه می‌رساند که مجاهدین دولت اسلامی تانک‌های نیروهای مرتد را در نزدیکی پالایشگاه نفتی بیجی آماج موشک قرار دادند که در نتیجه یک اراده تانک از بین رفت جنگنده های هوایی روسیه در تازه ترین موارد رستای اشاره واقعی در جنوب میادین شهر دیرزور را بمباران نمود. در نتیجه سیزده فرد ملکی به شهادت رسیدند که در بینشان 8 طفل نیست شاملند. همچنان این حمله هوایی 45 زخمی دیگر نیز به جا گذاشت. یک درگیری بین مجاهدین و نیروهای معارض سوری در شمال شرقی شهر در آر رخ داد، کی در اثر آن 8 از مسلحان مخالف کشته شدند کاروانی تدارکاتی ارتش عراق در منطقه مشاهده در شمال بغداد آماج انفجاری ماین های شده قرار گرفت در اثر این انفجارها 5 تن از بسیج مردمی کشته و تعدادی از وسایت نظامی تخریب گردید درگیری ها میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای فجر لیبی در جنوب شهر سیرت جریان دارد تاکنون در این درگیری ها ضربات شدیدی به دشمن وارد شده است یا خبر دیگر میگوید در درگیری که میان مجاهدین و نیروهای فجر لیبی در نزدیکی منطقه الساعدی در همین شهر رخ داد بیش از 33 تن از ساکر کشته و زخمی شدند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 وبهشیار باش مفکر باش مدبر باش مبادا فریب ملاهایی را بخوری که مانند خر کتابها را به پشت داختند مبادا فریب ملهایی را بخوری که مشاورین حکام تواقیتند مبادا فریب ملههایی را بخوری که زیر چطح تاوت به نام اسلامی مردم را به گمراهی دعوت می‌دهند. مردم را به مذهب سیکولار دعوت می دهند. مردم را به بهانه‌های مختلف از جهاد منع می کنند پس فکر کن ای کسی که از این ملوهای فروش فتوه می گیری بپرسیشان را که آنها مجاهدند یا سیکولار پس عجله کن مبادا با به مرگ جاهلیت ببینید مبادا از این نعمتی که خلافت از محروم بیا در میدانهای گرم نبرد و کار زار بر علیه همه کفار مرتدین بجنگ و دین الله را در سرزمین الله حاکم کن وله الآداب تميزه يرفعه بالخلق سحاب يأمر بالمعروف وينهى عن مُكَرِّف عن التوابه عن تواب عن التواب. شنون ذهير راديو صدى خلافات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادري جرامي ميخايم كابازهم إمشاب برشماياك. من گزارش را احیا کنیم بعضی برادران استان آمده گرفتن به خاطر ماهی مبارک رمضان با ایشان هم صحبت میشیم میبینیم که چی گفتنی ها دارن در رابطه با آمدن پر پربرکت رمضان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام <تصفيق> و رحمت الله و برکاته <تصفح> برادر میشه باشنده برا های رجسره خلافت خود معرفی کنین اسم ما عبد از لایت قابل هست ما عبدالله برادر در ولایت کابل شما قبلا زندگی میکردین اگر بر ما بگید که فرق میان روزه در نظام خلافت و میان روزه که در تحت نظام های کفری میشه میشن چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم فرق میان روزه گرفتن در صحات تواقید و در صحات خلافت در, در الاسلام در الخلافة بسیار ذات فرق است فرق به هندازی پرخ است اگر فکر بکنیم مثل زمین و آسمان فرقه از زباینی چرا بوجه حاکمیت است اس کافر است و حاکمیت است تاغوت است و جرحمدالله حاکمیت اسلام است و هر قوانین اسلام که باشه هر چیزی که باشه و تمام ازی به درستی و بسیار خوبی دی هم احشی میتانیم اما مرد بوجه روزه میگیرن و ادعای اسلام میکنن و خیرات و زکات هم میتنن چطور سروزی از اینو چقدر اهمیت داره اصلا در نظام طاغوت اسلام یک تحمیت خواست ندارد و ای روز گرفتن و ای نماس خواندن اکثریت یا فقط خاطر میکنن که مسلمان های ساساتی در مقابل احکومت ها نخیزه و در مقابل کفار نخیزه به خاطر می اگر گرفتن یا حتی کفار با خودشان تبریک آمیده که روز آمد تبریک باشه بارتان در حال که خودشان ایره نمیخوان. روزې و نام اسکل روزه بنوم ورس اکثرا کم بسر باشه که او واقعیت کو روزه بگیره اما و روزام تا که دوجه اوجه میگیره دایې روزه میگیره ای بسر فرق ده نزی چره که د خود ما در روزه بودیم و وقت وخت اوجه تیر چندین سال ها را د کردیم در کړیم د اعتکاف شستیم وخت د میبودیم بر ما جدول لاله میشه و د جدول و موچی گفته میشه که شما احساسی ن میکنه گپ از نظامی گپ نمیزنی گپ از جهاد نمیزنی یعنی بزرگترین یک حسی دین ما را او را از ما دور میکنه شما در باری ازی هیچ گپ نمیزنی امی قوانین رکمی ملاها تعیید میکنن برزین ها چی پیام داری؟ برزین ملاها پیام از خو ازی زیر نظام تاغود ازی زندگی که زلت است یک مسلمان تاغود برش بگوه یک یعنی حکومت کفری برش جدوال بیره خب می فهمه یک مرتد امنیتی از طرف ارگان امنیت استخبارات که چه واسیس یهود استمامیان یا یک جدول دول را یا یک چیره میاره برازی که شما امضا بکنید که شما این قواید قانون ما سرکشی کنین یک ذلت است بر یک مؤمن بر یک مسلمان حتی بر یک عالم خو خب بیخی زلت است کی کار رو بکنه و پیام همو بایه ایست ای که عزیز زندگی زلد یا دست بردارن بین زندگی با رو باید و رمضان بسیار خوبه رمضان خوشه که مجاهدین تمام اجدهی آرزوست که الله میگم ما رو در رمضان شهادت بطی حدیث هست که روز رمضانش باشه و شهادت نصیب شوه الله افتاری چه در جنت میده افتاری دنیا با ما چیست؟ افتاری جنت باشه و تمام مجایدین در یارزو هستن که افتاری در جنت بکنن شهادت نصیب شان شود و دمی رمضان دمی تشنگی گشنگی باشه یا آرزو بیدارن که با کفار با تواقیت با اینا سخت جنگ بکنن الله مدد میکنه الله با دوستان و بندگان خود میباشه مرتدین خود اصلا دین خود را فروختن با چند دلار یا پایاما با بای علمان و با مردم با مسلم و جوان ها که یا نظام تاخوت از زندگی ذلت از اینا یادس بردارند یا بهند نظام اسلام حاکمیت اسلام حاکمیت از خود از یقالمات خود از علما از قرآن از حدیث با مردم بیان میترد بهوج قسبا نظام داغی سر از نظام خود عملی میکنه وجزذا الله خیر جذاک خیر رادیو صدای خلافت رادیو صدای براعت از همه کفار مرتدین و روافظ نود بخن خلافت اسلامی وجوب بیعت به خلیفه ابراهیم الله جل جلاله میفرماید لو ان فقت ما في الارض جميعا ما انفت بين الله بينهم اگر همه آن در زمین آست را انفاق می نمودی میان دل‌هایشان الفت نمیانداختی اما الله میان آنها الفت نهاد که نتوزی و بغض از دلهایشان رخت بربست و با وسیله ایمان متحد شدند و تقوی نزدشان وسیله سنجش گشت هیچ فرقی بین عرب و غیر عرب و شرقی و غربی و سرخ و نمی نهادند و ثروتمند و مسکین نزدشان یکسان بود نجات پرستی و نعره جاهلیت را دور انداختند و پرچم لا اله الا الله را حمل و براستی و اخلاص در راه الله جهاد کردند پس الله تعالی هم با همین دین والا مقامشان ساخت و برای حمل رسالتش ارجمند گردانید و به آنها کرامت بخشید و آنان را صاحبان قدرت و سروران دنیا قرار داد ای امت گرامی و بزرگوارمان، ای بهترین امت الله تعالی در مدت یک سال فتح را نصیب مسلمانان می کند که های دیگر تای سالها بلکه قرنها آن را فتح نخواهند کرد تنها در مدت بیست و پنج سال توانستند دو امپراتوری بزرگ را که تاریخ شناخته از میان بردارند و گنجهای آن را در راه الله انفاق نمودند آتش مجوس را برای همیشه خاموش کرد و پوزه صلیب را با کمترین نفرات و تجهیزات به خاک معلیدند امام ابوبکر ابن ابی شیبه در مصنف خود از ابی وائل روایت میکند که گفت سعد بن ابی وقاز در حال که مردم با او بودند در قادسیه فرود آمد میگوید نمیدانم شاید ما هفت تا هشت هزار نفر بیشتر نبودیم و مشرکان شست هزار یا در این حدود بودند و از بها همرایشان بود وقت آنها در آنجا فرود آمدند و ما گفتند برگردید چون که ما با شما نفرات و تجهیزات کافی نمی بینیم می گوید گفتیم ما باز نمی گردیم می گوید مشرکین شروع بخندیدن به تیرهای ما کردند و می گفتند دوک دوک آن را به دوک سنگی تشبیه می کردند بله ای امت اسلام اینان همان با حریان هریان. و چوپان گزفندان بودند که نیک و زشت را از هم تشخیص نمی دادند و حق و باطل را از هم جدا نمی کردند. زمین را پس از آن که آگنده از ستم بود پر از داد نمودند و قرنها فرمان دنیا بودند و این به سبب قدرت و تعداد فراوان و یا دانایی بیش از حد آنها نبود هرگز بلکه همه این فتوحات فقط به خاطر ایمانشان به الله تعالی و طبیعتشان از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود ای امت محمد صلی الله علیه و سلم هنوز هم بهترین امت ها هستی و هنوز هم عزت و شرف از آن توست و سروری به تو باز خواهد گشت و قطعاً معبود این امت در گذشته همان معبود حال حاضر آن است و کسی که در گذشته به این امت یاری رساند امروز هم به آن یاری خواهد رساند زمان آن فرا رسیده است زمان برای نسل هایی که در دریاهای پستی غرق شده و شیر ذلت را نوشیده و مردم اوباش به آن تسلط یافته فرا رسیده بعد از آن که خواب غفلتش طولانی گشته است زمان آن فرا رسیده که بخروشد برای امت محمد صلی الله علیه وسلم زمان آن فرا رسیده که از خواب برخیزد و لباس ننگ را از تن درآورد و گرد و غبار پستی و رسوایی را از خود پاک نماید زمان ناله و زاری و سیلی زدن به صورت به پایان رسیده و به بهعظن الله صبح عزت از نو طلو کرده و آفتاب جهاد برآمده و مژده های نیکی درخشان شده و سربلندی در کرانه پدیدار گشته و نشانه های پیروزی آشکار است و این از پرچم خلافت اسلامی پرچم توحید بلند و افراشته شده و به احتزاز در و از حالت تا دیاله و خراسان زیر سایه آن قرار گرفته است و دیوارهای تاغوتها نابود و پرچمهایشان سرنگون شده و مرزهایشان از بین رفته و سربازانشان کشته یا اسیر و یا مغلوب و پراگنده شده اند مسلمانان با عزت و کافران خار و اهل سنت با کرامت و اهل بدعت ترد شده و مخفی هستند حدود الله همه حدود برپا می شود و مرزها پازداری و صلیب ها شکسته و قبرها ویران شده و اسیران با تیزی شمشیر آزاد گشتهاند و مردم در جای جای دولت اسلامی به زندگی و سفرهای خود مشغولند و نسبت به جان و مال خود آرامش خاطر دارند حاکمان تعین و قاضی ها مکلف شده اند و جزیه نهاده شده و اموال غنیمت و خراج و زکات جمآوری شده است و دادگاهها برای از بین بردن ظلم و قطع دشمنها برپا گشته است منکرات از میان رفته و درسها و حلقه های تعلیم در مساجد تشکیل شده و به فضل الله تعالی دین به کلی برای الله تعالی خالص شده است فقط یک امر باقی مانده امری که فرض کفایی است و با ترک آن همه امت گناهکار می شوند واجب فراموش شده از زمانی که ضایعع شده امت اسلام تعم عزت را نچشیده رؤیای است که در عمق هر مسلمان مؤمن جای دارد و آرزوی است که دل هر مجاهد موحدی برایش میتپد آگاه باشید این امر خلافت است خلافت شريعتنا، شريعتنا، شريعتنا، شريعتنا، شريعتنا، شريعتنا، شريعتنا، شريعتنا،